ژن خودخوا نوشته ریچارد داکینز فصل دوازدهم بخش سوم اما از ذر کلی حاکم شدن به چه معناست چه تعداد این به با آن در باید وجود داشته باشد تا عملکرد این به آن درها از همیشه کلکها پیش بیفتد بستگی دارد به بازدهایی که بانکدار در این بازی خاص قبول کرده بدهد در کل تنازیز که می توانیم بگوییم یک بسامد تعیین کننده یعنی یک لبه تیغ وجود دارد. در یک طرف لبه تیغ بسامد تعیین کننده این به آن در جلو می زند و انتخاب هرچه بیشتر این به آن در را برمیگزیند. در لبه دیگران بسامد بحرانی همیشه کلک بیشتر می شود و انتخاب هرچه بیشتر به نفع همیشه کلک است. اگر به یاد داشته باشید ما تعادل این لبه تیغ را در داستان حسابگرها و قبازها در فصل دهم ده داشتیم. بنابراین کاملا مهم است که جمعیت از کدام طرف تیغ شروع کند و لازم است بدانیم چه می شود که گاهی جمعیت از یک لبه به لبه دیگر سوخ داده می شود. فرض کنی جمعیتی داریم که در لبه همیشه کلک قرار دارد. تعداد کم افراد این به آن در در زیادی با هم ندارند که پای منافع دوجانبه به میان آید. بنابراین انتخاب طبیعی جمعیت رو بیشتر به سوی طرفی که همیشه کلکس میراند. در صورتی که اگر جمعیت میتوانست به طور اتفاقی خودش را از شر این لبه نجات دهد، کم کم به طرف این با در سرازیر میشد و به هزینه بانکدار یا طبیعت بازده بهتری داشت. ولی وازه است که جمعیت‌ها هیچ خاص گروهی یا قصد و هدف گروهی ندارند. نمی توانند در جهت رفتن به یک طرف بخوشند، فقط در صورتی به آن سو می که از طرف نیروهای غیر مستقیم طبیعت به طور اتفاقی به آن سو هدایت شوند. چطور چنین چیزی رخ می دهد؟ یک راه بیان و پاسخ این است که بگوییم تصادفی می روم. اما تصادف است. حاکی از حالت ما، در واقع، به این معنی است که اسبابهایی که هنوز ناشناخته اند یا دقیقا مشخص نیستند آنها را تعیین می کنند شاید جوابی کمی بهتر از تصادف داشته باشیم. می توانیم به راه های عملی بیاندیشیم که تعداد افراد این به آندر را تا حد توده بحرانی افزایش میدهد. این معادل است با جستن راه های ممکن برای دور هم جمع کردن تعداد مناسب از افراد این به در طوری که از جیب بانکدار به همه سودی برسد این جهت فکری امیدوار کنند اما نسبتاً مبهم است چگونه ممکن است در گرد هم آمدن محلی؟ افرادی که متقابلا شبیه هم هستند، با همدیگر جمع شوند در طبیعت راه آشکار آن نسبت ژنی خویشاوندی است حیوانات بیشتر گونه ها در کنار خواهر برادر و خال ها زندگی می کنند تا کنار افراد اتفاقی آن جمعیت لازم نیست در اینجا انتخابی در کار باشد. این پیامد خود به خودی چسبندگی جمعیت است. چسبندگی یعنی تمایلی که افراد دارند برای ادامه زندگی نزدیک به محلی که متولد شدهاند. برای مثال در بیشتر طول تاریخ و در بیشتر قسمت جهان گرچه از قرار معلوم نه در جهان امروزی ما افراد بشر به ندرت بیش از چند کیلومتر از زادگاه خود دور شدهاند. در نتیجه خوشههایی شامل خیشاوندان ژنی پیدا شده است بیاد میآورم وقتی به دیدن جزیره دورافتاده در سواحل شرق ایرلند رفته بودم از مشاهده اینکه که تقریباً همه گوشهای بزرگ مثل دستی کوزه داشتم، خیلی حیرت کرده بودم بعید بود که گوش بزرگ مناسب آب و هوای آنجا باشد که بادهای ساحلی شدید داشت علت این بود که بیشتر ساکنان آن جزیره قومخیش نزدیک هم بودند اقوامی که ژن مشترک دارند نه فقط در خصوصیات چهره بلکه در همه جنبه‌های دیگر نیز مانند هم هستند برای مثال از نظر تمایل ژنی به این به کردن یا نکردن بنابراین حتی اگر این به در کل جمعیت کمیاب باشد به صورت موضعی ممکن است زیاد باشد ممکن است افراد این به در یک محل و اندازه کافی با هم برخورد داشته باشند که از همکاری متقابل هم برخوردار شوند. در حالی که از نظر محاسباتی که فقط بسامتهای کلی را مده نظر دارد پایینتر از بسامت لبه تیغ باشند. اگر چنین باشد، ممکن است افراد این با آن در که با هم در محلی محدود همکاری سمیمانه دارند به قدری در عمل کرد موفق باشند که خوشهای کوچک محلی آنها تبدیل به خوشهای محلی بزرگتر شود. این خوشه های محلی ممکن است چنان رشد کنند که در مناطق دیگر نیز پخش شوند در جاهایی که قبل از این از نظر تعداد افراد همیشه کلک فراگیر بودند وقتی صحبت از این نو قلمرو بسته است آن جزیره ایرلندی که گفتم مثال خوبی نیست چون در واقع جدا افتاده است به جای آن جمعیت بزرگی را مجسم کنید که حرکت زیادی در آن نیست طوری که همسایه‌های نزدیک شباهت بیشتری به هم دارند تا همسایه‌های دور با اینکه مدام در سراسر آن منطقه ازدواجهایی صورت می‌گیرد بر می‌گردیم به لبیتیقمان ای پس این به آن در می‌تواند فراگیر شود تنها چیز لازم کمی خوشبندی است از نوعی که معمولاً در جمعیت‌های طبیعی پیدا می‌شود این به آن در حتی وقتی کم شمار است یک آمادگی درون سرشتی برای عبور از تیغ و رفتن به لبه خودش دارد طوری که گویی از یک معبر سری زیر تیغ رد می شود اما دریچه آن معبر سری یک طرفه است عدم تقارنی وجود دارد برخلاف این باندر همیشه کلک گرچه یک ایسس واقعی است ولی نمی تواند با استفاده از خوشه محلی به آن سوی لبه تیغ برود قضیه فرق میکند. های محلی افراد همیشه کلک از حضور سمیمانه هم محرومند. مخصوصا در حضور هم عملکردشان بد است. به جای اینکه بیسر و صدا به حضینه بانک بانکدار در پی کمک رساندن به هم باشند، همدیگر را پایین میآورند. بنابراین همیشه کلک بر خلاف این، کلک برخلاف این بهاندر از خویشاوندی یا چسبندگی جمعیت بهره ای نمیبرد. به این ترتیب با اینکه این, این بهاندر در یک ای‌اس‌اس تقریبی است، از صبات سطح بالاتری برخوردار است. این به چه معنی است؟ بله، با باسبات است. اما در اینجا یک چشمنداز دورتر مد نظر ماست. ما همیشه کلک مدت زیادی در مقابل تهاجم مقاومت می کند. اما اگر به اندازه لازم صبر کنیم، مثلا هزاران سال، این به آن در در سرانجام شمار لازم را برای قلتیدن به آن سوی تیخ جمع می آورد. و جمعیت با آن سو سرازیر می شود. اما عکس این وضع رخ نمیدهد همانطور که دیدیم همیشه کلک از خوشبندی بندی بهره نمیبرد و همچنین از ثباتی در سطح بالاتر برخوردار نمیشود همان گونه که ملاحظه کردیم این با آن در خوب است به این معنا که هرگز اولین کسی که کلک می زند نیست و با گذشت است به این معنا که خدای گذشته را زیاد در یاد نگه نمیدارد حالا من یک اصطلاح بی و فنی دیگر از اکسلورد را معرفی میکنم. این با اندر بیهسادت هم هست بر اساس باجگان اکسلورد حسود بودن یعنی سعی کنی نسبت به حریف به پول بیشتری برسی نه اینکه پولی که در مجموع از بانکدار میگیری زیادتر باشد بیهسادت بودن یعنی اگر بازیکن دیگر هم به همان اندازه شما پول گیرش بیاید و به این ترتیب هر دو به پول خوبی برسید، شما کاملا خوشنود باشید. این با آن در واقع در هیچ بازی برنده محصوب نمی شود. اگر توجه کنید ببینید او در هر بازی نمی تواند نمره بالاتر از حریف کسب کند. زیرا جز برای تلافی هرگز کلک نمی زند. حد اکثر کاری که می کند این است که با حریفش مساوی کند. اما گرایش او به این است که نمره هر دو بالا باشد. در جایی که پای این باندر با و دیگر راپورت های خوب در میان است واجه حریف بی مناسبت است اما متاسفانه وقتی روانشناس ها بازی های زندانی تکراری را بین انسان های واقعی برپا می کنند تقریبا همه بازیکن ها حسادت می شوند و عملکردشان از نظر پولی که به آن می رسند پایین است به نظر می رسد بسیاری از افراد بدون اینکه حتی به این فکر باشند به جای اینکه دست به دست او بدهند تا خدمت بانکدار برسند ترجیح میدهند طرف مقابل را پایین بیاورند کار اکسلورد نشان میدهد که اشتباه کار کجاست این اشتباهی است که فقط در بعضی بازیها وجود دارد نظریه پردازان بازیها انواع بازی را به دو دسته صفر مجموع و غیر صفر مجموع تقسیم میکنند در یک بازی صفر مجموع برنده شدن یک نفر به معنی بازنده شدن طرف مقابل است. شطرنج بازی صفر مجموع است چون هدف هر بازیکون این است که برنده شود. یعنی طرف مقابل را شکست دهد. اما معمای زندانی یک بازی غیر صفر مجموع است. بانکداری هست که پول می دهد و دو بازیکن می توانند تمام مدت دست به یکی کنند و به ریش او بخندند. این به بانکدار خندیدن مرا به یاد سفر دلنشینی از شکسپیر میاندازد. اولین کاری که میکنیم کشتن همه ی هاست. نقل از کتاب هندی چهارم در آنچه اختلافات مردم نام گرفته زمینه زیادی برای همکاری وجود دارد. چیزی که مثل یک رویاروی صفر مجموع به نظر میرسد که میتوانند با کمی نیت خیر به یک بازی غیر صفر مجموع با منافع دوجانبه تبدیل کرد. و یک ازدواج موفق یک بازی غیر صفر مجموع است. مالا مال از همکاری دوجانبه حتی وقتی که به نیست می انجامد به دلایلی به نفع طرفین است که به همکاری ادامه دهند و با جداییشان هم به صورت غیر صفر مجموع کنار بیایند. اگر آرامش بچه دلیل کافی برای آن نباشد هزینه دو وکیل لطمه کمی به اوضاع مالی خانواده وارد کند. بنابراین پیداست که یک زوج فهمیده و متمدن باید با هم پیش یک وکیل بروند غیر از اینه؟ ولی خب، در عمل اینطور نیست دست کم در انگلستان نیست تا همین اواخر در همه پنجاه ایالت آمریکا قانون یا دقیق‌تر و قابل توجهتر بگوییم کد حرفه‌ای وکلا اجازه چنین کاری را به آنها نمیداد. وکیل بعد یک عضو از هر زوج را به عنوان موکل بپذیرد شخص دیگر را از همان دم در برگرداند یا اصلا از نظر قانونی در موردش اظهار نظر نکنند یا او را پیش وکیل دیگری بفرستد و اینجاست که قضیه جالب بیشه برد. این دو وکیل یک حرف را از دو جایگاه جداگانه، یعنی ما و آنها شروع می کنند می دانید که ما به معنی من و همسرم نیست به معنی من و موکلم است در برابر او و وکیلش وقتی قضیه به دادگاه میرسد عملا در ردیف پرونده اسمیت علیه اسمیت قرار میگیرد فاز را بر این می که خصومت در کار است چه آن زوج خصومت داشته باشند چه نداشته باشند یا اصلا طرف این توافق کرده باشند که دوستان و عاقلانه کار را به انجام برسانند یا نه اینکه مشکل به صورت تو بازنده من برند قلم داد شود به نفع چه کسی است ؟ به احتمال زیاد فقط وکیل زوج نگونبخت وقت به یک بازی مجموع صفر کشانده می شوند. اما برای وکیلها ها مورد اسمیت علیه اسمیت یک بازی صفر غیر مجموع جانانه است که در آنها اسمیت ها برده میدهند و آن دو حرفی. حساب مشترک موکل هایشان را با همکاری های با دقت رمز گزاری شده می دوشند. یک راه همکاری آنها این است که لایه هایی که خودشان می دانند طرف دیگر نخواهد پذیرفت هر لایه لایه ضد خود را می سازد و باز هر دو که پذیرفته نمی شود. و همینطور جریان ادامه پیدا می کند. هر نامه هر تلفنی که بین طرفین دعوا رد و بدل می شود یک میزانی پول دیگر به صورت حساب اضافه می کند و اگر بخت یارشان باشد این روند ماهها و شاید سالها کش پیدا می کند و هزینه ها پا به پا بالا میرود وکیل ها برای حل مشکل کنار هم جمع نمی شوند و جلسه نمی بر برعکس و از قضای روزگار اصرار بر جدا بودن آنها دارند که ابزار اصلی همکاری آنها در استفاده از جی به موکل است حتی ممکن است خود وکیلها از آنچه چه می کنند آگاه نباشند درست مثل خفاشای خوناشامی که به زودی با آنها آشنا میشویم آنها خیلی خوب به قواعدی را که به صورت الگو در آمده اجرا می‌کنند این نظام بدون هیچ سازماندهی یا نظارت آگاهانه پیش می‌رود کارش فقط این است که ما را به بازی صفر مجموع بکشاند وازی صفر مجموع برای موکلها، ها ولی خیلی غیر صفر مجموع برای وکلا چاره چیست؟ راهحل شکسپیر که وکلا رو بکشی ما رو پلید می کند. ترین است که قانون رو عوض کنیم. اما بیشتر مجلس نشینان از وکالت به مجلس را یافتند و ذهنیتشان صفر مجموع است. تصور کردن فضایی که بیش از مجلس عوام بریتانیا آمیخته به دشمنی باشد مشکل است. دادگاه ها نزاکت مجادله را حفظ می کنند و ممکن است هوای ما را هم داشته باشند. چون من و دوست فرهیختم در تمام طول راه تا بانک همکاری خوبی داریم. شاید لازم است به قانونگذاران با حسنی و البته وکلای پشیمان کمی نظریه ها را یاد داد. اگر بگو این بعضی وکلا درست نقش مخالف را بازی میکنند بیانصافی نکرده ایم آنها موکلان را که در پی یک بازی مجموع سفرند تشویق میکنند در بیرون از دادگاه به یک توافق غیر سفر مجموع برسند بازی های دیگر در زندگی انسان چگونه است؟ کدام سفر مجموع و کدام غیر سفر مجموعند؟ و چون این با آن فرق دارد کدام جنبه زندگی بشر را صفر مجموع و کدام را غیر صفر مجموع می دانیم؟ کدام جنبه های زندگی بشر را به کین ورزی و کدام او را به همکاری و ایستادن در مقابل بانکدار بانک دار و می دارد؟ با عنوان نمونه، چانه زدن بر سر دستموز و اختلاف دستمزدها را در نظر بگیرید. وقتی ما بر سر میزان افزایش حقوق بحث می کنیم، آیا انگیزه ما حسادت هست؟ یا همکاری است برای اینکه واقعا درآمدمان را زیاد کنیم در زندگی واقعی همچنان که در آزمایی های روانشناسانه آیا فرض میکنیم مشغول بازی صفر مجموع هستیم من این پرسش های مشکل را فقط مطرح می کنم پاسخ دادن با آنها خارج از گستره این کتاب است فوتبال یک بازی صفر مجموع است کم معمولا اینطور است ولی گاهگاهی میتواند به یک بازی صفر غیر مجموع تبدیل شود این اتفاقی است که در سال 1977 در لیگ فوتبال انگلیس رخ داد در لیگ فوتبال تیمها به چهار دسته تقسیم میشوند در هر دسته هر باشگاه در مقابل باشگاه دیگر بازی میکنند و از تصاوی و برد امتیازاتی برای آن فصل جمع میکند در دسته اول بودن اعتبار محسوب میشود و برای باشگاه نان و آب هم هست چون جمعیت زیاد را گرد می‌آورد. در پایان هر فصل، سه باشگاه آخر دسته اول به دسته دوم برای فصل بعد منتقل می شوند. منتقل شدن به رده پایین تر فرجام ناخوشایندی است که برای پرهیز از آن تلاش زیادی صورت می گیرد. ماه 1977 آخرین روز بازی های فصل در آن سال بود. از سه باشگاهی که باید به رده پایین منتقل می شدند، دو تا مشخص شده بود، ولی بر سر بومی هنوز بحث بود. معلوم بود که باید یکی از این سه تیم باشند، ساندرلند، بریستول یا کاونتری بنابراین در آن روز شنبه این سه تیم باید از جان مایه میگذاشتند. سادرلند در مقابل تیم چهارمی که جایگاهش در دسته اول قطعی بود بازی می کرد. بریستول و کاونتری در مقابل هم بودند. همه میدانستند اگر ساندرلند ببازد، آن وقت باید بریستول و کاونتری به تساوی برسند تا در بخش اول باقی بمانند. اما در صورتی که ساندرلند برنده می شد آن وقت تیمی که باید پایین می می‌رفت بریستول یا کاونتری بود. بستگی به نتیجه مسابقه ای داشت که در مقابل هم داشتند. این دو بازی حساس باید همزمان برگزار شد ولی در عمل بازی برستول پنج دقیقه دیرتر شروع شد طوری که قبل از پایان بازی بریسل کامنتری نتیجه آن بازی معلوم شد و این باعث شد که این داستان پیچیده شروع شود بیشتر بازی بین بریسل و کاونتری به قول یک گزارش خبری یک بازی سریع و وحشیانه یا اگر دوست دارید یک جنگ تمام عیار بود در 8 دقیقه اول بازی هر دو طرف گلهای درخشانی کاشته بودند و نتیجه دو دو بود بعد دو دقیقه مانده به پایان بازی از آن طرف خبر مد که ساندرلند باخته است فورا مدیر تیم کاونتری دستور داد خبر را روی صفحه بزرگ الکترونیکی نتایج که در انتهای زمین بود به نمایش بگذارند. ظاهراً هر بیست و دو بازیکن آن را میدیدند و همه متوجه میشدن که دیگر لازم نیست خیلی تلاش کنند تا به رده پاینتر نروند تصاوی برای بالا ماندن هر دو تیم کفایت میکرد در واقع در آن وقت سیاست بد این بود که گلی زده شود چون با برداشتن بازیکنها از دفاع این خطر وجود داشت که یکی ببازد و پایین برود هر دو تیم سعی کردند تصاوی حفظ شود به قول همان گزارشگر خبری هواداران دو تیم که رقیبان سرسخت هم بودند چند دقیقه قبل از اینکه دانگلیز دقیقه هشتادم را برای بریستول اعلام کند ناگاهان در یک شادی بزرگ به هم پیوستند داور رانچلیس بدون این که بتواند کاری کند میدید که بازیکنها توپ را بدون هیچ تلاش یا بیتفاوتی به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند. چیزی که قبلا یک بازی صفر مجموع بود یک دفعه خاطر خبری که از جهان بیرون رسید به یک بازی غیرسفر مجموع تبدیل شده. در ارتباط با بحث قبلی من انگار یک بانکدار خارجی از آسمان پیدا شده بود و این امکان را برای بریستول و کامنتری فراهم آورده بود که نتیجه به نفع هر دو باشد. یعنی مساوی. ورزش تماشاگری مثل فوتبال معمولا به دلیل خاصی بازی مجموع سفرند. برای تماشاگران دیدن بازیکنهایی که با تمام توان خود تلاش میکنند خیلی هیجان است از تماشای همکاری های دوستانه اما صحنه واقعی حیات چه زندگی بشر چه زندگی گیاهان و حیوانات به خاطر تماشاگرها برپا نشده است حقیقت این است که بسیاری از موقعیت‌ها در زندگی واقعی معادل بازی غیر سفر مجموع است. طبیعت اغلب نقش بانکدار را بازی می‌کند و افراد از موفقیت یکدیگر بهره‌مند می‌شوند. آنها مجبور نیستند رقیبی سرکوب شود تا خودشان به سودی برسند. بدون اینکه قوانین ژن خودخواه را زیر پا بگذاریم، می‌بینیم چگونه همکاری و یاری دو جانبه حتی در جهانی هم که اساساً خودخواه هست می تواند شکوفا شود. میبینیم چگونه در آن مفهومی که مورد نظر آکسلورد بود، های خوب جلوترند. هم. اما همه اینها وقتی راه می‌افتند که بازی تکراری باشد، بازیکنها باید بدانند یا میدانند که بازی فعلی آخرین بازی بین آنها نیست. با استفاده از عبارت گیرای اکسلورد سایه آینده باید بلند باشد. اما تا چه اندازه؟ نمیتواند طول نامحت داشته باشد. از یک دیدگاه نظری طول بازی مهم نیست. ما این است که هیچ کدام از بازیکن ها ندانند کی بازی تمام می شود. فرض کنید من و شما مقابل هم بازی میکنیم و فرض کنید ما هر دو میدانیم دقیقاً صد دور بازی انجام میشود. حالا ما هر دو می داریم که دور صدم که آخرین دوره است معادل یک بازی برد یا باخت معمای زندانی ساده است. بنابراین تنها راه برد برای هر کدام از ما در دور صدوم این است که کلک بزنیم و هر کدام ما می توانیم بنا رو بر بگذاریم که بازیکن مقابل هم این را می‌فهمد و تصمیم می‌گیرد دور آخر کلک بزند. بنابراین، وقتی می شود دور آخر را به عنوان استثناء سوخته تلقی کرد، یعنی چون قابل پیش پیشبینی است دورش را باید خط کشید. اما آن وقت دور 99 معادل یک استثناء خواهد شد و تنها انتخاب عاقلانه برای بازیکن در این ما قبل آخرین دور هم کلک است. دور 98 هم به همین دلیل وضعیتش معلوم می شود و همینطور یکی یکی عقب می رویم تا آخر. دو بازیکن کاملا منطقی که هر کدام بنا را بر این گذاشته که بازیکن مقابل کاملا منطقی است. اگر بدانند بازی چند دور ادامه خواهد داشت جز اینکه که هر بار کلک بزنند کار دیگری نمی بکنند. به این دلیل وقتی نظریه پردازان بازی ها از معمای زندانی تکراری صحبت می کنند همیشه فرض را برین این میگذارند که پایان بازی قابل پیش بینی نیست یا فقط بانکدار آن را میداند حتی اگر تعداد دقیق دورهای بازی معلوم نباشد در زندگی واقعی اغلب این امکان هست که با یک حدس آماری پی برد که احتمالاً بازی چقدر دیگر طول می کشد. این ارزیابی شاید بخش مهمی از راهبرد باشد اگر من ببینم بانکدار ناآرام است و به ساعت خود نگاه می کند ممکن است حدس بزنم که بازی به زودی تمام میشود و بهتر است کلک را بیاورم اگر حدس بزنم شما هم متوجه بیقراری بانکدار شده اید ممکن است بترسم از اینکه شما هم در فکر کلک هستید من احتمالا نگرانم از اینکه نکند کسی که اول کلک میخورد من باشم مخصوصا چون من میترسم از اینکه شما دارید میترسید از اینکه من چندتا نقطه تمایز ساده ای که ریاضیدان بین بازی معمای زندانی ساده و معمای زندانی مکرر قائل میشود بیش از حد ساده است از هر بازیکن انتظار می رفتارش طوری باشد که انگار مدام این احتمال را که بازی چقدر طول خواهد کشید تغییر دهد. هرقدر احتمال ادامه بازی بیشتر باشد، بازی او بیشتر بر اساس انتظاری پیش می که ریاضیدان از بازی مکرر واقعی دارد، به عبارت دیگر خوبتر، بخشندتر و بیهسادتر خواهد بود. هرچه چه براورد او از زمان ادامه بازی کوتاهتر باشد، تمایل او به اینکه طبق انتظار ریاضیدان از بازی ساده، بازی کند بیشتر است بدتر و بیگذشت خواهد شد.